پس سه‌اوی هزار یک شب شب پنجاه هم ملک ابریزه با سردار سباران ملک هردوب گفت که شما یک به یک با او مبارزه کنید تا دلیرترین شما ظاهر شود. آن مرد گفت به حق مسیح سوگند که راست گفتی ولی نخستین مبارز جز من نخواهد بود. ملک گفت صبر کن تا من او را از حقیقت کار بیاگاهانم. اگر او قصد جنگ نکند شما را به دور راهی نخواهد بود من و کنیزکان من و هر که به دیرندره است جانها او فدیه کنیم پس ملکه ابریزه شرکان را باخبر کرد شرکان تبسم کرد و دانست که ملکه خودعه نکرده آنگاه خیشتن را ملامت کرده با خود گفت چگونه خود را به هلاکت انداختم؟ پس با ملکه گفت که یکی یک, یک مبارزه بر ایشان ستم است. دهتن دهتن به جدال من بیایند. آنگاه برخواسته لباس جنگ بپوشید و با شمشیر برکشیده بیرون رفت. چون سردار دلیران او را بدید بر او حمله آورد و شرکان نیز به مانند شیر قریدن گرفت و شمشیر بر کمر او بزد و دونیمهش ساخت ملکه چون شجاعت شرکان بدید رتبه او نزدش افزون گشت پس ملکه با دلیران گفت که خون سردار بخواهید برادر سردار دلیر نامدار بود به مبارزت قدم گذاشت شرکان مهلتش نداد و در حال دونیمش کرد آن شمسه خوبان بانگ بر دلیران زد که خون یاران بخواهید. ایشان یکی یک می آمدند و شرکان ایشان را همی کشت تا پنجاه تن بکشت. دلیران را یارای مبارزت نماند. همگی به یک بار حمله آوردند و شرکان یلان را همی زد و همی کشت تا اینکه کسی بر جای نماند. ملکه پیش آمد و شرکان را در آغوش گرفت و به قصر اندرش برد و گفت ای شرکان از چون توی دست بر ندارم اگرچه به سرزنش رومیان گرفتار آیم، پس شرکان خون از شمشیر خود پاک کرد و این دو بیت برخاند چون کوس ز پرخاش بود آوازم چون تیر به سر به جنگ دشمن تازم چون نیزه به تنها شکنم قلب عدو چون تیغ برهنه بر سر او تازم آنگاه ملکه دست او را ببوسید و خود نیز زرهی که در برداشت به درآورد شرکان گفت ای خاتون از بحر چه زره پوش گشتی و چرا با تیغ برکشیده ایستاده بودی؟ ملکه گفت از ایشان بر تو بیم داشتم پس ملکه حاجبان را گفت چرا فرستادگان ملک بی اجازه من به قصر من اندر شدند حاجبان گفتند فرستادگان ملک خاص سردار حاجت به اجازت نداشتند ملکه گفت شما به امد چنین کردید و می‌خواستید که مهمان من کشته شود. پس با شرکان گفت ایشان را نیز بکش. شرکان ایشان را بکشت. آنگاه با شرکان گفت چون راز پوشیده من بر تو آشکار شد اکنون حدیث خود با تو بازگویم. بدان که من دختر ملکه هردوبم و نام من ابریزه است و آن عجوز که ذات و دواهی نام داشت مادر پدر من است و او پدر مرا از آمدن تو آگاه ساخته و او ناچار هیلتی در حلاک من خواهد کرد رأی من این است که در این ملک نمانیم ولی از تو همی خواهم که با من نکویی کنی به که من با تو کردم چون شرکان این سخن بشنید از قایت شادمانی دلش به تپید و گفت به خدا سوگند که تا مرا روانند در تن است هیچ کس به تو دست نخواهد یافت ولیکن ندانم که تو را به دوری پدر شکیبایی خواهد بود یا نه ملکه گفت آری شکیبا شوم شرکان او را سوگند داد و با هم پیمان بستند ملکه گفت اکنون دلم آرام یافت ولی خواهش دیگر از تو دارم و آن این است که تو با سپاه خود پیش پدر بازگردی شرکان گفت ای خاتون پدرم مرا به جنگ پدر تو فرستاده است و سببش مالی است که از اعراب گرفته و از جمله آن مال گوهری بوده گرانبها. ها ملکه گفت چون چنین است خاطر آسوده دار و من سبب دشمنی ملک قسطنطنیه و ملک هردوب را با تو بازگویم در میان ما عیدی هست که عید دیرش نامند و هر سال در آن عید دختران ملوک و بزرگان و بازرگانان جمع آیند و هفت روز به دیرندر بنشینند و من نیز از جمله ایشان بودم چون دشمنی در میان پدید شد پدرم مرا هفت سال از میان آن جمع من کرد اتفاقا سالی دختران ملوک و بزرگان در آن عید از هر سوی به دیر آمدند و از جمله ایشان صفیه دختر ملک قسطنطنیه بود. هفت روز در دیر بماندند. هشتمین روز بازگشتند. صفیه گفت من به قسطنطنیه نخواهم رفت مگر از راه دریا. پس کشتی از برای او مهیا کردند صفیه با خاسان خیش به کشتی بنشستند و همین رفتند تا اینکه باد مخالف کشتی را از راه به در کرد غذا را به دریا اندر یک کشتی از نصارای جزیره کافور بود و پانصد تن از فرنگیان در آن کشتی بودند چون کشتی حامل صفیه پدید شد، فرنگیان کشتی به دان سوراندند تا نزدیک شدند. تنابها به کشتی صفیه بستند و به نزدیک کشتی خودشان کشیدند و قصد جزیره کافور کردند. ساعتی نرفت که باد مخالف بوزید و کشتی را همی آورد تا به سامان مملکت ما رسیدند. ما بیرون رفته ایشان را بگرفتیم و کشتیم و کنیزکان و اموال را به غارت بردیم و در کشتی چهلتن کنیز بودند که صفیه یکی از ایشان بود. پس کنیزکان گرفته به نزد پدر بردیم و ما نمیدانستیم که دختر ملک افریدون در میان آن کنیزکان است. پدرم ده تن از کنیزکان بگزید و تتمه بر دیگران بخشید و از آن ده تن پنج تن با هدیه‌های قیمتی به پدر تو ملک نعمان فرستاد و ملک نعمان از آن پنج کنیز صفیه دختر ملک افریدون را از برای خویشتن بگزید در آغاز امسال ملک افریدون کتابی به پدر من فرستاد و در آن کتاب چیزها نوشته بود که نشایدش گفت و پدر مرا ترسانده و سرزنش کرده بود که شما دو سال است کشتی از دست فرنگیان گرفته اید و از جمله آن چیزها که در کشتی بود دختر من صفیه با شهست تن از کنیزکان بودند و کسی پیش من نفرستادید و مرا آگاه نکردید من هم از بیم آن که در میان ملوک ننگ از برای من روی دهد نتوانستم که حکایت دختر خیش فاش کنم و کار خود تا امسال پوشیده داشتم و کس نزد فرنگیان فرستاده سراغ دختر گرفتم ایشان گفتند ما از مملکت تو بیرونش نبرده ایم و باز ملک افریدون در کتاب نوشته بود که اگر شما با من سر دشمنی ندارید و قصد شما دریدن پرده من نیست همون ساعت که کتاب من به شما رسد دختر مرا نزد من بفرستید هرگاه در این کار اهمال بورزید و بر من اسیان کنید هر آینه مکافات بدکرداری شما بکنم چون این کتاب به پدر من رسید دانست که صفیه دختر ملک افریدون در میان آن کنیزکان بوده کار بر او دشوار شد و از کرده پشیمان گردید و حیران بود که صفیه را از ملک نعمان بازپس نتواند خواست خاصه این روزها که ملک نعمان را از صفیه اولاد به هم رسیده القرص پدرم پس از آگاهی بر این کیفیت دانست که به ورطه بزرگ اندر است و چاره از هیچ رهگذر ندارد پس جواب کتاب ملک افریدون بنوشت که ندانسته صفیه را به ملک نعمان فرستادم و ملک را از او فرزند به هم رسیده چون جواب پدرم به ملک افریدون رسید از قایت خشم برخاست و بنشست و بجوشید و بخروشید و گفت چگونه می شود که دختر من اسیر شود و دست به دست بگردد و او را بی مهر و عقد چون کنیزکان مملوک شمرند. پس از آن گفت به حق مسیح و به حق دیدن صحیح سوگند که آرام نگیرم و ننشینم تا اینکه ننگ از خود بردارم و کاری کنم که پس از من در زبانها گفته آید و پیوسته میخواست حیلتی کند و کیدی سازد تا اینکه رسول به نزد پدرت ملک نعمان فرستاده و با سخنان دروغ او را از جای برانگیخته و او نیز سپاه آماده کرده، روان ساخته و ملک افریدون را از این جنگ قصد این بوده است که تو را دست گیر کند و سپاه تو را پراکنده و تلف سازد. و اما آن سگوهر قیمتی که به پدرتو نوشته چگونگی آنها این است که سگوهر بزرگ و قیمتی در نزد صفیه بود. پدر من آنها را از او بگرفت و به من داد اکنون آنها نزد من است تو به سوی سپاه خیش بازگرد و پیش از آن که ایشان به شهر رومیان و فرنگیان داخل شوند ایشان را بازگردان که اگر ایشان به شهر اندر آیند خلاصی نخواهند یافت چون این سخنان بشنید دست ملکه ببوسید و گفت منت خدای را که تو را سبب نجات من و سپاه من گردانید ملکه گفت تو به موکب بازگرد و سپاه بازگردان و رسولان ملک افریدون را دستگیر کن تا صدق مقال من بر تو ظاهر شود و من نیز سه روز پس از این نزد تو خواهم بود و با هم به شهر بقداد اندر شویم چون شرکان قصد بازگشتن کرد ملکه گفت احد فراموش مکن آنگاه ملکه از بحر وداع برخاست و گریان شد شرکان نیز به وجد و شوق بیفزود سرشک از دیده فرو ریخت ملک ابریزه به گریستن او بگریست و این دو بیت برخاند وقت سحرش چو ازم رفتن بگرفت دل را غم جان رفته دامن بگرفت اشکم بدوید تا بگیرد راهش در وی نرسید دامن من بگرفت پس شرکان از وی جدا گشته از دیر فرو آمد و بر اسب بنشست و از پل چوبین گذشته در میان درختان همی رفت تا به همان مرق رسید رسید تن سوار از دور پدید شدند شرکان بر خود بترسید و تیق برکشید چون نزدیک شدند شرکان ایشان را بشناخت و ایشان نیز شرکان را بشناختند و از اسب پیاده شدند. وزیردندان با دو امیر دیگر به شرکان سلام کردند. وزیردندان سبب غیبت باز پرسید. ملکزاده همه ماجرای خیشتن که با ملکه در میان گذشته بود بیان کرد. وزیر دندان شکر خدای تعالی به جا آورد و سپاه را فرمان رهیل داد و اما رسولان ملک افریدون رفته بودند که ملک را از آمدن ملک زاد شرکان آگاه کنند ملک پس از آگاهی سپاه فرستاده بود که شرکان را بگیرند و سپاهش را بکشند و اسیر کنند پس شرکان با سپاه خیش کوچیده همین رفتند تا 25 روز منازل سپردند و به سامان مملکت خیشتن برسیدند. از برای راحت در آنجا فرود آمدند مردم بلوک و نواحی جیره و علیق حاضر آوردند تا دو روز در آنجا براسودند پس از آن کوس رهیل بزدند و سپاهیان به قصد شهرهای خیشتن سوار شدند و شرکان با صد تن سوار در آنجا بماند پس از ارتحال سپاه شرکان نیز با آن یک ست تن سوار گشته دو فرسخ از منزلگاه دور شدند و در میان دو کوه به تنگنای رسیدند دیدند که از برابر گردی جهان را فرو گرفت و چون گرد بنشست یک سوار دلیر که در اسلاحی جنگ قوتور بودند هدید آمدند و بانگ بر شرکان زدند و گفتند به آرزوی خود رسیدیم و بر قنیمت دست یافتیم اکنون از اسبان فرو دایید و اسلحه و اسباب به ما سپارید تا ما بر جانهای شما ببخشیم و از کشتن شما درگذریم شرکان چون این بشنید در خشم شد و گفت ای پست ترین نصرانیان این جرأت کرده به سرزمین ما قدم نهاده اید بس نیست که با ما بدین گونه سخنان همیگویید شما را گمان این است که از دست ما خلاص خواهید یافت و به شهرهای خیش باز خواهید گشت پس بانگ بر سواران خود زد و گفت این سگان را از هم بپاشید و خود نیز تیق برکشیده به فرنگیان حمله آوردند و فرنگیان نیز دلیرانه به مسادمت پیش آمدند تا شامگاه دلیران از هر دو طرف جدال کردند چون تاریکی شب جهان بگرفت یلان از هم جدا گشتند شرکان سواران خود جمع آورد دید کس را جراحتی نیست به جز چهار نفر که زخم‌های سبک دارند. شرکان گفت من همه عمر به قتال و بس دلیران دیدهام. چنین یلان شجاع ندیده بودم. سواران گفتند ای ملک زاده در میان ایشان سواری هست بس شجاع و دلیر. ولی با هر کدام از ماها که مقابل میشد چشم از او میپوشید و او را نمی کشت. به خدا سوگند که اگر فردا قصد کشتن ما کند یکی از ما جان به در نخواهد برد شرکان از این سخن حیران شد و گفت چو فردا شود فکر فردا کنیم و فرنگیان نیز به سرخیل خودشان گرد آمدند و گفتند که ما امروز از ایشان غنیمتی نبردیم. سرهنگ ایشان نیز وعده فردا بداد. داد. آن شب هر دو گروه در جایگاه خیش به سر بردند. چون روز برآمد ملک زاد شرکان با دلیران بر اسب بنشستند و به مبارزت به میدان قدم نهادند. دیدند که فرنگیان صف کشیده ایستاده اند. شرکان گفت به مبارزت مبادرت کنید یکی از فرنگیان فریاد کرده گفت امروز یک یک قتال خواهیم کرد پس سواری از سواران شرکان به مبارزت قدم گذاشت و رجز همی خواند و همی گفت کند بدخواه را سردرگریبان به کارم هر که مولد آستین را چو گرزم من که میرانم به یک چوب سگان حمله و شیران کین را ز سختی چوب ما در شد به آهن مبادا کس خورد چوب چنین را دلیری اشحب سوار از فرنگیان که هنوز خط به آرزش ندمیده بود اسب به میدان راند و زد و خرد همی کردند که فرنگی مبارز شرکان را با نیزه سرنگون کرد و بازوان بسته اسیرش برد. فرنگیان شادی کردند و مبارز دیگر فرستادند. از مسلمانان نیز دیگری به میدان شتافت. ساعتی در زد و خورد بودند که فرنگی او را از اسب بینداخت و بازوان بسته اسیرش کرد. پیوسته یکی یک از مسلمانان به مبارزت میرفتند فرنگیان اسیرشان همی کردند تا اینکه شب شد و تاریکی جهان را فرو گرفت و از مسلمانان در آن روز 20 سوار به اسیری برده بودند شرکان چون این بدید کار به او دشوار شد و مصیبت بزرگ گردید و سواران خود را جمع آورده با ایشان گفت فردا خود به میدان شوم و بزرگ فرنگیان را به مبارزت بخواهم و از او باز پرسم که بدین سرزمین از بهر چه آمده اند و او را از جنگ بترسانم اگر صلح کنند صلح کنیم وگرنه جنگ خواهم کرد پس در آنجا به روز برآمد هر دو گروه سوار گشته سف برکشیدند شرکان به میدان مبارزت قدم نهاده گفت منم آن زورمند هشت پهلو که پهلو بشکنم خسمان دین را کنم دروازه پیدا بهر زخمم اگر کوبم حسار آهنین را و سپه سالار فرنگیان نیز به مبارزت شرکان پیش آمده رجز همی خاند منم که نوبت آوازی صلابت من چه سیت همت من در بسیط خاک افتاد به هیچ کار جهان روی بر نیاوردم که آسمان در دولت به روی من بگشاد چون رجز به انجام رسانید شرکان با دل پرخشم به دو حمله کرد و او نیز با شرکان به مصادمت برآمده به جدال و حرب مشغول بودند تا اینکه تاریکی جهان را فرو گرفت هر دو گروه به جای خیش باز گشتند شرکان با سواران خود گفت تا امروز چنین دلی و شجایی ندیدم ولی او را خصلتی است که از دیگران ندیده بودم و آن این است که هرگاه به خصم چیره می شود و مجال تن می یابد نیزه به کف بگرداند و با ته نیزه بزند و من نمیدانم که کار من با او به کجا خواهد رسید پس شرکان بخفت چون روز برآمد سردار فرنگیان در میان میدان بی‌استاد و شرکان نیز به مبارزت قدم نهاد و تا شامگاه به قتال اندر بودند آنگاه به مقر خیش بازگشتند هر یک در مقام خیش شب را به روز آوردند و بامداد هر دو طرف سوار گشته به همدیگر حمله کردند و تا نیم روز جدال همی کردند آنگاه فرنگی حیلتی کرده لگام اسب شرکان بگرفت قزا را در همان حال اسب فرنگی سکندری خورد و فرنگی بیفتاد شرکان تیغ برکشید که او را بکشد او بانگ بر شرکان زد و گفت چون زنان مغلوب شوند دلیران را نشاید که با آنها چنین معامله کنند شرکان چون این بشنید او را نیک نظر کرد دید که ملک ابریزه است پس شمشیر بیانداخت و زمین ببوسید و با ملکه گفت چه تو را به این کار بداشت و این کارزار از بحر چه بود؟ ملکه گفت قصد من امتحان تو بود و خواستم که پایداری تو در معرکه قتال ببینم و این سواران که میبینی همه کنیزان منند که سواران تو را قالب آمدند و اگر اسب من سکندری نمیخورد شجاعت و جلاادت من نیز بر تو آشکار میگشت شرکان از سخن او تبسم کرد و با او گفت مننت خدای را که نعمت وسال تو به من عطا کرد نوری از روزن اقبال در افتاد مرا که از او خانه دل شد ترابباد مرا پس از آن ملکه بانگ بر کنیزان زد که رهیل را آماده شوید کنیزکان فرمان بپذیرفتند شرکان نیز به رهیل فرمان داد پس همگی با هم بکوچیدند و تا شش روز همی رفتند آنگاه شرکان با ملکه و کنیزان گفت که لباس فرنگیان بکنند چون قصه به دینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فروب است